کتاب مجموعه افسانه های ایرانی نوشته زهرا مهاجری ارائه شده از کانال تلگرامی هزار افسان داستان های صوتی به مدیریت محمد جواد بوستانی گوینده سهیلا بوستانی سلام به شنوندگان خوب افسانه های صوتی از سری داستان های مجموعه افسانه های ایرانی با داستان دیگه ای در خدمتتون هستم که امیدوارم از شنیدن داستانمون لذت ببرید اسم داستانمون هست شاهساده بقول پادشاه پیری بود که دوتا پسر داشت و بینایی خودش رو از دست داده بود یه شب به سراش صدا زد و گفت فرزندای من درشتر زمین دوری دریاچه ای هست که یه ماهی در اونجا زندگی میکنه این ماهی سالی یه بار عذاب بیرون میاد. این ماهی دوای درد منه. اگه شما اونو برا من بیارید که روی چشام بذارم کرگودن من درمان پیدا میکنه و نور چشام برمیگرده پسر بزرگ پادشاه پیش خودش فکر کرد که اگه من برم ممکنه تا وقتی که برمی گردم، پدرم بمیره و برادرم جانشین بشه و من پادشاهی رو از دست بدم. پس به پدرش گفت که راه خیلی دوره و من از احت این کار بر نمیان. بهتری که برادرم بره. پسر کوچیک پادشاه که هم قوی بود و هم شمشیر زن ماهری بود همراه ده تا سرباز به راه افتادن. اونا بعد از گذشتن از کوه و بیابون سرانجام به دریاچه رسیدن و درست موقعی رسیدن که ماهی میخواست از آب بیرون بیاد. پسر پادشاه پرید توی آب و ماهی رو گرفت ولی تا میخواست اونو از آب بکشه بیرون ماهی از دستش سر خورد و توی آب افتاد. پسر پادشا خیلی ناراحت شد چون از یه طرف پدرش منتظر اومدن اون بود و از طرف دیگه ماهی تا سال دیگه از آب بیرون نمی اومد. بالاخره پسر پادشاه بعد از فکر کردن زیاد به این نتیجه رسید که بهتر یه سال اونجا بمونه و دست پر پیش پدرش برگرده. به خاطر خاطرمون سربازا رو به قصر فرستاد و خودش اونجا مون. بعدم برای اینکه کمتر گرسنگی و سختی بکشه تصمیم گرفت به شهری که همون نزدیکی ها بود بره و بر خودش یک کاری دست و پا کنه. پسر پادشاه به راه افتاد رفت و رفت و رفت تا به شهر رسید و در یه مغازه کل پزی مشغول به کار شد. شش ماهی از این قضیه گذشت یه جارچیا جار زدن که یه قول خطرناک دختر پادشاه شهر را دزدیده. و پادشاه وعده داده که هر کسی دخترش رو نجات بده علاوه بر اینکه اون رو به دامادی خودش قبول میکنه نیمی از ثروتش رو هم بهش میبخشه البته که آدمای زیادی برای نجات دختر پادشاه رفته بودن. پسر پادشاه هم تصمیم گرفت این کار رو انجام بده و پیش پادشاه رفت. پادشاه اول پیشنهاد اون پسر رو قبول نکرد چون فکر میکرد که اون یه رعیته اما بعد از اصرار زیاد بالاخره موافقت کرد پسر پادشاه رد پای قول رو دنبال کرد تا به یه قار بزرگی بالای کوه رسید یه داخل غار رو نگاه کرد که دید قول خابیده و دختر پادشاه زیر بازواش گیر کرده تصمیم گرفت به داخل قار بره دختر متوجه ورود پسر پادشاه شد ولی برای اینکه قول از خواب بیدار نشه حرفی نزد پسر پادشاه جلوتر اومد تا دست دختر رو بگیره ولی یه دفعه قول از خواب پرید و پسر پادشاه فوری مخفی شد قول گفت بوی آدمی زاد میاد دختر گفت حتما بوی منه چون منم آدمیزاد زاد هستم. قول دوباره خوابش برد. پسر پادشاه داشت با خودش فکر میکرد که چجوری دختر رو از دست قول نجات بده که نگاش به یه بطری شیشه ای تو عقب قارف داد. سریع و از روی کنجکاوی رفت و اون شیشه رو برداشت. یهو قول از خواب بیدار شد و همین که دید بطری در دست پسره خیلی ترسید. چون اگه اون شیشه میشکست عمر قولم تموم میشد قول گفت ای جوان تو اون شیشه رو نشکن در عوض هرچی بگی من قبول میکنم و هر کاریم که بخوای انجام میدم پسر پادشاه گفت باید دختر رو برداری و همراه من به قصر بیای اونا رفتن رفتن به قصر رسیدن پادشاه دید که پسر پادشاه و دختر شغول هر ستا با هم دیگه اومدن خیلی ترسید اما پسر پادشاه جلو رفت و همه ماجره رو تعریف کرد پادشاه به قولی که داده بود عمل کرد و بعد از گرفتن مراسم باشکوهی پسر پادشاه و دختر خودش رو به عقد همدیگه دیگه پدرای روز عروسی پسر پادشاه به پدر دختر گفت که یه کار ناتمومی داره که باید با همسرش و قول به دنبال اون کار برن اما به پادشاه قول داد که بعد از اینکه اون کار رو انجام بده با دختر پادشاه برمیگردن تو همون شهر زندگی میکنن اونا ستایی راه افتادن و رفتن و رفتن تا به دریا چ رسیدن درست موقعی بود که ماهی از آب بیرون میومد. پسر پادشاه به قول دستور داد تا ماهی رو بگیره بعد از اینکه قول ماهی رو گرفت همگی به سمت قصر پدرش به راه افتادن پادشاه تا خبر رسیدن پدرش رو شنید خیلی خوشحال شد و پسرش رو در آغوش گرفت پسر پادشاه ماهی رو از قول گرفت و روی چشمای پدرش گذاشت چشمای پادشاه بلافاصله خوب و سالم شد پسر همه ماجرای قول و دختر پادشاه رو برای پدرش تعریف کرد پادشاه به قول گفت دیگه عمر تو به سر اومده بعد به پسرش دستور داد که شیشه رو زمین بزنه تا قول از بین بره پسر پادشاه هم شیشه عمر قول رو به زمین زد و قول از بین رفت پادشاه رو به پسرش کرد و گفت من تو رو برای جانشینی خودم انتخاب کردم باید همینجا بمونی و در این شهر حکومت کنی ولی پسر گفت من به پدر همسرم قول دادم که برم و در شهر اونها زندگی کنم به علاوه اینکه برادرم که از من بزرگتره میتونه در این کشور بمونه. در مملکت داری به شما کمک کنه پسر پادشاه مدتی رو پیش پدر مادرش همونجا موند و بعد از مدتی با همسرش به شهر اونا برگشتن و سالهای سال به خوبی خوشی در کنار هم زندگی کردند. امیدوارم که از شنیدن داستانمون لذت برده باشید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 همه و همه و همه در کانال تلگرامی هزار افسان داستان های افسانهای صوتی سانین مهران دوستی،